درست می شود که از تفسیر هم تا با حوال حق و فی ها پس صف و انزاله که اولا گفته بودیم اما بیقداری که از تفسیر امروز می‌خوایم خواهیم براتون ارض بکنیم از تفسیر انمیزان است، در لفظ مبارکه جلاله الله هست این تفسیر هست می فرماید و اما لفظ جلاله و اما لفظ جلاله یعنی خود این الله که در بسم الله الرحمن الرحیم هست الله تو فقط ایشون مرد بیان می کنه كان الله اصله الاله يبقى معناه الله اصلش الاله بوده است ها حذفت الهمزه تو ده كسرت استعمال نمیگیم الاله این الاله ای این همزه بی در اثر کسرت استعمال این هی گفته همون گفته همون گفته الاله، این اله حذف شده و پاک شده توی کلمات و لغات مردم پس در متیجه شده چی؟ الله الاله، وقتی همزه اله در اثر کسرت استعمال و به کار بردن زیاده پاک میشه چه الله و اله من علا الرجل و یعلهو به منی خود این اله یعنی چه چون اصل الله ال اله بوده است خود این اله یعنی چه میفرماید اله از علا الرجل و يعلهو. یعنی اینکه که حرستید مرد ما میپرستان مرگ فلان چیز را یعنی اله اگر از یا یعلو گرفته شده باشد به معنی پرستش و عبودیت و بندگی است او من رجل، او من یا اینکه اله از جل به معنی جل به معنی سرگردان کرد مرد را یا او مللهجل یا به معنی واله و ایران کرد مرد را. ای یعنی اینکه مرد مت شد. و چون ذات اله را انسان نمیتواند بشناسد هرقدر در این راه بیشتر پیش بره به باله شدنش به متغیر شدنش و اگر معنی شوق رو هم درش, درش مداخله بدیم به معنی شیداشدن شدن انسان می توانیم در فاسید یادش بکنیم یعنی خلاصه یک حقیقت که انسان رو باره میکند انسان رو گیج میکند انسان رو حیران میکند انسان رو سرگردان میکند آخرش هم نمیتونه حقیقتیش رو بشناسه اگر از اله یا و اله گرفته باشید ای تحیره یعنی متحقیر میکند خلاصه انسان رو فهوه فعال به کسر الف میگه پس الها بر وزن فعال است به کسر فعال فعال، نه فعال و فعال نشه یا فعال و فعال مثلا نشه به سیغه مبالغه باشه به معنی اسم مفهول است به معنی اسم به مثل کتاب کتاب این اله بروزه چیه؟ فعال به معنی مفغولش هست یعنی به معنی اسم مفغول استعمال میشه گرچه مستر ظاهرش هست خود کتاب وقتی بگید آقا این کتاب ما به دست شما رسید یعنی چی؟